عزیزان این کتاه ترین رسالی پولوس رسوله اما کوتاهی پیام چیزی از اون کم نمیکنه. دوستان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین پولوس این نامه رو برای توصیه اونیسیموس به فلیمون می نویسه اونیسیموس بردی فراری فلیمونه که ایمان آورده و توبه کرده این تصویر زیبایی از نجات خود ما هست امروز معلم ما این کتاب زیبایی کوچک رو با ما در میون میذاره. با هم به اون گوش میکنیم. به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدیم. خوشحالم که تصمیم گرفتید در این دوره بررسی کتاب مقدس با ما همراه باشید. اگر تازه به ما ملحق شدید، باید بهتون بگم که ما این بررسی رو از کتاب پیدایش در عهد قدیم شروع کردیم و تقریباً در هر جلسه یک کتاب رو تموم کردیم. ما بررسی هامون عهد قدیم رو به پایان رسوندیم. و در عهد جدید به رسالات پولس رسول رسیدیم و در جلسه قبل تقریبا نامه پولس به تیموتائوس و تیتوس رو به پایان بردیم. در این جلسه ما یکی از نامه‌های کوتاه ما بسیار تحصیل گذار پولس رسول به شخصی ثروتمند به نام فلیمون رو شروع خواهیم کرد. قبل از اینکه بررسی نامه‌های پولس رو به پایان ببریم، من کمی از روش معمولیمون فاصله می گیرم. میخوام که بررسی نامه‌های پولس رو با آخرین سخنان او به پایان ببرم سخنانی که خطاب به تیموتوس در دوم تییموس نوشته قبل از اینکه به آخرین حرف پولس در دوم تیموتوس بپردازم قصد دارم کوتاه ترین نامه پولوس رو که به فلیمون معروف هست بررسی کنیم. رساله فللیمون چهمین رساله پولوس هست که در حبس نوشته. همونطور که خواهیم دید نامه دوم تییموس هم در زندان نوشته شده و عملا 5 نامه هست که پولس در زمان حبسش ها رو نوشته. اگرچه نامه پولوس به فیلیمون کتاه ترین نامه پولوس هست، اما در نوع خودش نامه بسیار طولانی هست. مخصوصاً در عرصی کاربورت های عملی اجتماعی، عاملی که سبب شد این نامه نوشته بشه فقط این هست. فیلیمون ثروتمند غیر یهودی بود که در کولوسی زندگی میکرد. عضوی از کلیسایی بود که در کولوسی تشکیل می شد. همون کلیسایی که پولوس رساله کولوسیان رو خطاب به اون نوشته. و عملا در خانه همین غیر یهودی ثروتمند به نام فلیمون تشکیل می شده فلیمون برده به نام اونیسیموس داشت معنی اونیسیموس قابل استفاده و یا مفید هست. احتمالاً او چون این برده برای شرزشمند بوده این نام را به او داده بود از شواهد پیداست که اونیسیموس چیزهایی از اربابش فلیمون دزدیده و فرار کرده بود اما در شهر روم اونیسیموس در زندان با پولوس ملاقات میکنه و پولوس او را به ایمان به مسیح هدایت میکنه. اونیسیموس تبدیل میشه و در زندان رومی از نو متولد میشه. لازمه یه تولد دوباره توبه هست. توبه برای هر کسی مفهوم متفاوتی داره. برای اونیسیموس توبه به این معنی بود که باید نزد اربابش فلیمون برمیگشت و با به کارش مواجه میشد. احتمالا پولوس این رو برای او روشن کرده بود. اما پولوس به اونی سیموس این رو هم گفته بود که ای برده فراری من نامه ای خواهم نوشت و به دست تو برای فلیمون خواهم فرستاد چون او رو به خوبی می شناسم. همونطور که تو رو به مسیح هدایت کردم او را هم به مسیح هدایت کردم. پس ای به دست تو برای او خواهم فرستاد و نزد اربابت تو رو شفاعت خواهم کرد. فلیمون تو رو نه به عنوان یک دزد و برده فراری بلکه به عنوان برادری در مسیح خواهد پذیرفت. نامه کوتاه و برنگیزاننده فیلیمون نامه ای هست که اونیسیموس وقتی نزد اربابش برمیگشت به همراه خودش برد. به عنوان یک دزد و برده فراری از نزد اربابش رفته و حالا به عنوان ایمانداری تولد دوباره در مسیح به طرف فیلیمون برمیگرده. این زمینه ی نامه پولوس به فیلیمون هست. اما وقتی به نامه پولس به فیلیمون می رسید و اون رو می خونید، اون تنها یک نامه کوتاه نیست. بلکه به لحاظ عملی اجتماعی نامی بسیار طولانی هست اون نامه شاهکاری در مورد سیاست و روابط انسانی هست پولس رسول در بسیاری از چیزها تبهر داشت پولس به ما شاهکارهایی در مورد الهیات، الهیات شبانی، خدمت و بسیاری زمینه ارائه کرده حالا ما قصد داریم شاهکار سیاست و درایت او رو بررسی کنیم که همینطور شاهکاری در مورد کارهای اجتماعی نیز هست. قبل از جنگ داخلی 1861 تا 1865 در امریکا گاهی اربابان ثروتمند که بردهدار بودند و ایمان آورده بودند دوست داشتند که شبانشون بیاد و انجیل رو برای برده های اونها هم تعلیم بده مخصوصا متن خاصی رو از کولوسیان و افسوسیان اونجایی که پولس رسول به بردگان میگه اربابان خودشون رو طوری خدمت کنند که گویی خداوند خود عیسی مسیح رو خدمت میکنند اما مالکان برده ها نمیخواستند شبانشون نامه فیلیمون رو به برده ها تعلیم بده. در طی جنگ های داخلی امریکا که عمدتا بر سر مسئله بردهداری متمرکز بود، این نامه پولس بسیار بحث بود. چون دقیقا این رو می گفت که همه ما در مسیح یکی هستیم. در مسیح زن و مرد و برده و آزاد، بربر و یونانی و یهود وجود نداره. همه ما در مسیح یکی هستیم. واقعیت اینه که اون برده Oneسیموس که تولد دوباره یافت نه تنها زندگیش شود شد بلکه روابط و مناسبات زندگیش نیزوض شد. از جمله رابطه او با اربابش فیلیمون و رابطه اربابش با اون نیز تغییر کرد از اونجای که ارباب او یک مسیحی تولد دوباره بود کاربردهای های عملی اجتماعی این نامه این بود که روابط بین فیلیمون و بردهش کاملا تغییر کرد و این سبب شد که این نامه کوتاه محرکترین نامه بلاهازه مناسبات اجتماعی باشه. وقتی که این نامه رو میخونید، سیاست و درایت به کار رفته در این نامه رو ملاحظه کنید. حالا که مقدمه ای از این نامه رو بهتون دادم، این نامه کوتاه رو مطالعه میکنیم و روی کرده مثبت پولس رو در شرایط مشکلات سخت ملاحظه میکنیم. از طرف پولس که به خاطر عیسای مسیح زندانی هست و تیم برادر ما به دوست و همکار ما فلیمون و به کلیساایی که در خانه تو تشکیل میشود و به خواهر ما بانو اپفیه و آرکیپوس همکار ما این نامه تقدیم می‌گردد جالب اینجاست که پولس نامه را خطاب به کل کلیسای نویسه که در خانه فیلیمون تشکیل میشه. چون فیلیمون نه تنها با این مسئله به صورت خصوصی و شخصی مواجه خواهد شد بلکه در مقابل کلیسایی هم که در خانهاش تشکیل می شود، باید با این مسئله مواجه بشه بعد طبق معمول همینش سلام می‌کنه پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. اینجا قسمت با سیاست و با درایت نامه هست. وقتی فهمیدید که موضوع اصلی نامه پولوس چی هست، ملاحظه کنید او چقدر زیبا به این مسئله می پردازه. هر وقت که دعا می کنم، نام تو را به زبان می آورم و پیوسته خدای خود را شکر می کنم. کمی بعد این کاربردی بسیار جالب خواهد داشت. چون از محبت تو و ایمانی که به عیسی خداوند و جمیع مقدسین داری آگاه هستم. و این هم به نوبه خودش خواهد داشت. ای برادر محبت تو برای من شادی عظیم و دلگرمی بسیار پدید آورده است زیرا دلهای مقدسین به وسیله تو نیروی تازه گرفته حالا پولس شروع میکنه به نکته اصلی میپردازه بنابراین اگرچه من در اتحاد خود با مسیح حق دارم که جسارت کرده دستور بدهم که وظایف خود را انجام دهی اما به خاطر محبت صلاح میدانم از تو درخواست کنم من پولوس که سفیر ایسای مسیح و در حال حاضر به خاطر او زندانی هستم. این تقریبا قلب طرف رو لمس می کنه. شما اینطور فکر نمی کنید؟ آیا برای فلیمون پاسخ دادن این سخت نبود؟ از جانب فرزند خود اونیسیموس اینجا او با کمی تنز به موضوع میپردازه پردازه. که در زمان حبس خود پدر روحانی او شدم از تو تقاضایی دارم. او زمانی برای تو مفید نبود. حالا پولوس بوم بسلیش رو میندازه ولی اکنون هم برای تو و هم برای من مفید هست. یادتونه که گفتیم معنی نام اونیسیموس مفید یا قابل استفاده هست و پولس به این دلیل که با کلمه نام او بازی میکنه. میدونم که اگرچه نام او به معنی مفید بود اما تو او رو بیفایده می میدونستی، اما حالا او برای هر دوی ما مفید خواهد بود. من او را برمیگردونم، بنابراین تو او را بپذیر. این قلب خود من هست. آیا این بسیار تحریک کننده نیست؟ اکنون که او را پیش تو روانه می کنم مثل این است که قلب خود را برای تو می فرستم. خوشحال می شدم که او را پیش خود نگاه دارم تا در این مدتی که به خاطر انجیل زندانی هستم او به جای تو مرا خدمت کند. اما بهتر دانستم که بدون موافقت تو کاری نکنم تا نیکویی تو نه از روی اجبار بلکه داوطلبانه باشد. این واقعیت که خدا ما رو موجوداتی با حق انتخاب خلق کرده که انتخاب‌های اختیاری می‌کنیم، به نظر میرسه که برای پولس بسیار مهمه. وقتی که او اون مجموعه رو برای ناراحتی‌های مقدسین در او شلیم انتخاب کرد و اون دوبا به حیرت انگیز دوم قرنتیان هشت و نه رو به قرنتیان نوشت، یادتونه که چطور بر اون نکته تاکید داشت؟ هدیه دادن باید ارادی باشه. باید چیزی باشه که شما با رغبت میدید. هر کسی آنقدر که در قلبش اشتیاق داره بده خدا بخشنده شادمان رو دوست داره یک هدیه نباید اجباری باشه این مسئله مهمی برای پولس بود او در ادامه می نویسه شاید علت جدایی موقت او از تو این بود که او را برای همیشه بازیابی و البته نمسته یک غلام بلکه بالاتر از آن یعنی به عنوان یک برادر عزیز او مخصوصاً برای من عزیز است و چقدر بیشتر باید برای تو به عنوان یک انسان و یک برادر در مسیح عزیز باشه. پس اگر مرا دوست واقعی خود میدانی، همانطوری که مرا میپذیرفتی، او را نیز بپذیر. و اگر به تو بدی کرده است یا چیزی به تو بدهکار است، آن را به حساب من بگذار. من این را با دست خودم مینویسم. من پولوس آن را به تو پس خواهم داد. نمیگویم که تو حتی جان خود را هم به من مدیونی. ای برادر، چون در خداوند متحد هستیم می‌خواهم از تو بهره‌ای ببینم. به عنوان یک برادر مسیحی به قلب من نیروی تازه‌ای ببخش. من با اعتماد به اطاعت تو و با دانستن اینکه آنچه من میگویم و حتی بیشتر از آن را هم انجام خواهی داد، این را به تو می‌نویسم. در ضمن اتاقی برای من آماده کن، زیرا امیدوارم که خدا دعاهای شما را مستجاب کرده مرا به شما برگرداند. اینجا پولس به فیلیمون میگه که دعاهای اون میتونه باعث بشه که پولس از زندان رومیان جایی که این نامه‌ها را از اونجا نوشته آزاد بشه. اپافراس که به خاطر مسیح عیسی با من در زندان است به تو سلام میرساند و همچنین همکاران من مرقس، آریسترخوس، دیماس و لوقا به تو سلام می‌رسانند. فیض عیسی مسیح خداوند با روح شما باد. این نامه حیرت انگیز الهامی با سیاست و زیبایی پولس رسول به این مرد غیر یهودی فلیمون هست. هسته اصلی این نامه این هست که پولس رسول به فلیمون و به ما میگه عیسای مسیح انسانها رو عوض میکنه و وقتی انسانها رو عوض کرد روابط و مناسبات اونها رو با یک دیگر نیز عوض میکنه. وقتی که به این نامه کوچک می رسید، به اون کاربورد فکر کنید. به این فکر کنید که چطور عیسای مسیح زندگی پولس رو عوض کرد. پولسی که یک فریسی بود، یک عالم دینی بود. او متعصب ترین کسی بود که پیروان مسیح رو در ابتدای پیدایش کلیسا دستگیر میکرد و به مرگ می سپرد. ملاحظه کنید که چطور ریسای مسیح رو عوض کرد اصلا اگر مسیح را عوض نکرده بود فریسی پیری مانند پولس که نزد پاهای غمالایی می‌نشست، چه کاری با غیر یهودی مثل فلیمون داشت بر طبق شریعت یهود یک یهودی عملا اجازه نداشت که حتی از خانه یک غیر یهودی دیدن بکنه. پس اگر مسیحو رو نجات نداده بود و تبدیل نکرده بود او چه سر سرکاری میتونست با فیلیمون داشته باشه؟ و البته چه رابطه ای میتونست با برده فراری مثل اونیسیموس داشته باشه؟ اونیسیموس یک غیر یهودی دزد و برده فراری بود. عالم پیر فریسی مثل پولوس چه رابطه ای میتونست با مردی مثل اونیسیموس داشته باشه اگر مسیح هر دوی اونها رو عوض نکرده بود؟ البته کاربرد عملی و بسیار تأثیر گذار در این دونامه خطا اینه به این فکر کنید که عیسی مسیح چطور فلیمون را کرد. پولس اینجا به این اشاره میکنه که تغییری که عیسی مسیح میخواست در زندگی فلیمون به وجود بیاره باید توسط او و رابطه اش با برده فراریش به این برده منتقل می شد. بعد به این فکر کنید که چطور عیسی مسیح زندگی اونیسیموس را عوض کرده زندگی یک دزد و برده فراری رو. مکافات هر کدام از اعمال او مرگ بود اونی سیموس اگر دستگیر میشد مستحق مرگ بود او در زندان بود پس دستگیر شده بود اما چون به مسیح هدایت شده بود پولوس این نامه رو برای ارباب او می نویسه و به او می گه از تو می خوام که او رو دوباره بپذیری واضحه که منظور پولوس این بوده از تو می خوام که اونو ببخشی و از تو میخوام که او رو دوباره بپذیری اما نه به عنوان یک برده فراری که باید کشته بشه نه به عنوان یک دوست که باید زندانی بشه از تو می که او را به عنوان یک برادر بپذیری آیا این نامه تاثیرگذاری نبود او یک برده بود حتی بردهی فراری و او میگه فلیمون او را به عنوان یک برادر بپذیر به عنوان یک شاگرد عیسی مسیح او را طوری بپذیر چنان که گویی پسر من هست اگر پولس یک پسر میداشت پسری از گوشت و خون خودش فلیمون باید او را چطور میپذیرفت؟ به عنوان بخشی ژنتیکی و زنده از پولس رسول پولس میگه او رو طوری بپزید چنان که گویی او پسر من هست چون او پسر ایمانی من هست میگه او رو به عنوان یک مرد بپزید چون در اون زمان اونها برده ها رو مرد نمیدونستند اونها فقط مالی بودند که در مالکیت اربابشون بودند پولس به او میگه حالا او رو به عنوان کسی بپزید که برای تو مفید خواهد بود حتی اگر قبلا برای تو مفید نبوده حالا که مسیح زندگی او را عوض کرده، او مفید خواهد بود. و بالاخره پولس میگه: پس اگر مرا دوست واقعی خود میدانی، همانطور که مرا میپذیرفتی او را بپذیر. حالا اگر پولس از زندان آزاد شده بود و همانطور که میدونیم او آزاد شد و به سراغ فلیمون میرفت، فکر کنید فلیمون او را چطور میپذیرفت. پولس میگه: "باید اونیسیموس را طوری بپذیری چنان که گویی از من استقبال میکنی." این واقعا تاثیرگذار هست و قراربرد مؤثر این نامه کوتاه این هست ایسای مسیح زندگی انسان ها را عوض میکنه و وقتی زندگی مردم را عوض میکنه روابط و مناسبات اونها را هم عوض میکنه وقتی که عیسی مسیح شما را عوض کرد آیا تمام روابط شما را رو هم تغییر داد این نامه کوتاه پولس به ما میگه که عیسی مسیح میخواد شما را عوض کنه و میخواد تمام روابط شما را رو نیز عوض کنه با علم بر اینکه مسیح برای شما و روابط شما چیکار کنه آیا ایمان دارید که اون میتونه و خواهد کرد که اون میتونه و تعصبات شما رو عوض خواهد کرد سالها پیش من با یک تاجری مشغول خوردن صبحانه بودم به نظر میرسید که او مشکلات زیادی داشت من فکر کردم که او زخم معده داره چون او چندین بار از خوردن بعضی چیزها امتناع کرد و به نظر میرسید که خیلی پریشان هست. از او پرسیدم که آیا عمده مشکلات او با مردم هست؟ او به من نگاه کرد و گفت آیا نوع دیگه از مشکل هم وجود داره؟ آیا تمامی مشکلات ما بر کارمندان و مردم متمرکز نیست؟ من فکر میکنم که نامه پولس به فلیمون از این نظر موثر هست که چون بزرگترین مشکلی که ما امروز داریم روابطمان با مردم هست و کاربرد موثر این نامه کوچک هم این هست که عیسی مسیح تنها راه حل مشکلات ما در روابط با مردم هست چون او میتونه انسانها رو تغییر بده عیسی مسیح تنها کسیه که میتونه انسانها رو عوض کنه. بنابراین او تنها راه حل ما برای مشکلاتمان در روابط و مناسبات ما با مردم هست. ایسا وقتی گفت آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است، تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند دقیقا منظورش همین بود. وقتی کتاب مقدس کلمه جسم رو به کار میبره منظورش طبیعت انسانی بدون کمک خدا هست جسم فقط میتونه تولد جسمانی بده و تا زمانی که تولد دوباره روحانی واقع نشه جسم فقط میتونه جسم باشه عیسی مسیح و تولد ای که عیسی مسیح تعلیم میداد تنها راه حل انسانها برای مشکلات روابط و مناسبات بین اونها هست این کاربرد عملی نامه پولس به فیلیمون هست وقتی که این نامه رو میخونید کاربردهای دیگری هم میتونید از این نامه به دست بیارید. بسیاری از مردم معتقدند که نامه پولس به فیلمون نامه ای پر از رمزها است. مثلا اونها معتقدند که نامه فیلیمون به طور تمثیلی بازخرید رو به تصویر میکشه. آیا مفهوم بازخرید رو به خاطر داری؟ ما وقتی عهد قدیم رو بررسی میکردیم، اون مفهوم رو متوجه شدیم. مخصوصا در کتابهای شریعت و کتاب روت. بازخرید چیزی به معنی دوباره خریدن اون و پس گرفتن اون هست اگر شما چیزی رو از دست بدید و بعد اون رو دوباره به دست بیارید می فهمید که براتون ارزشمندتر میشه. چون اون رو از دست دادید و دوباره به دست آوردید این همون چیزیه که پولوس به فلیمون اظهار میکنه و برای او مینویسه شاید علت جدایی موقت او از تو این بود که او رو برای همیشه باز بعضی ها میگن که این تصویر زیبایی از باز خرید هست چون این چیزیه که برای تمامی نوع بشر پیش اومده. خدا مدت کوتاهی ما رو از دست داده تا اینکه توسط قربانی مسیح بر روی صلیب ما رو دوباره به دست بیاره. خونه ایسا مسیح بر روی صلیب بهایی بود که خدا پرداخت تا بتونه ما رو دوباره به سوی خودش برگردونه کتاب مقدس به این بازخرید میگه. این همینطور تصویر چیزی هست که برای بچه های شما اتفاق میفته گاهی اوقات ما والدین فرزندانمون رو تا مدتی از دست میدیم وقتی نوجوان ها رشد میکنن اونها, می اونها ممکنه از دوره یوبور کنند که به دوره سرکشی جوانان معروفه کتاب مقدس به ما میگه که تفر را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر شود هم از آن انحراف نخواهد ورزی اما کتاب مقدس نمیگه که اونها قبل از اینکه تصمیم بگیرند که چطور به زندگیشون ادامه خواهند داد سرکشی نخواهند کرد و از برخی امتحانات عبور نخواهند کرد شما شاید در پرورش فرزندانتون به جایی برسید که اجازه بدید اونها برند. وقتی و 23 ساله میشه و یا حتی در برخی موارد هجره یا 19 ساله میشه من با اکثر والدین میگم حالا دیگه مدرسه تموم شده باید ببینیم اونها چه چیزهایی یاد گرفتن باید اجازه بدید که اونها برند. یادم شبانی به من میگفت که چطور یکی از فرزندانش تصمیم گرفت که از اونها جدا بشه این از مشیت الهی بود که در اون موقع اونها مهمانهایی در خانه داشتند که یکی از اونها استاد دانشگاه بود که سالها با دانشجویان سر و کار داشت. او به شبان و همسرش مشورتهایی داد که حالا من میخوام با شما در میون بذارم. او گفت اگر اجازه بدید که او بره، احتمالا او به سیستم ارزشی دست خواهد یافت که مشابه همون چیزی هست که شما به او تعلیم دادید. اما اگر اجازه ندید بره، از روی سرکشی مست او ممکنه سیستم ارزشی رو در پیش بگیره که بسیار متفاوت از آن چیزی هست که با اون بزرگ شده پس من توصیه می کنم که بذارید بره خب اونها اجازه دادن و دخترشون رفت اوایل تابستان بود و سه ماه نگذشته بود که او دوباره برگشت چون وقتی او رفت متوجه شد که دنیا جایی بد و پر از مشکلات هست او یاد گرفت که براش سخته که با اونها سر کنه مخصوصا اگر شما سعی کنید با کار و تلاش خودتون به دانشگاه برید او میخواست برگرده و با خانوادهش زندگی کنه و خیلی مایل بود که تحت نظارت اونها باشه. در این دوره پرورش کودکان در راهی که باید بروند، گاهی شما باید اونها رو به مدت کوتاهی از دست بدید تا اینکه ایمان شما در اونها شکل بگیره و ایمان اونها بشه. تا اینکه اونها مثل اونسیموس ایمان بیارن و به طرف شما برگردن. وقتی که اونها ایمان آوردن و تجربه‌ای به دست آوردن که ایمان و تجربه خودشان هست مال شما، شما اونها را برای همیشه به دست میارید این دیدگاهی هست که نامه پولس به فیلیمون از اون منظر بازخرید رو به تصویر میکشه برخی ها بر این باورند که این نامه وقتی پولس رسول به فیلیمون میگه فیلیمون اگر اونیسیموس چیزی به تو بده کار اون رو به حساب من بذار من اون رو میپردازم کفاره جانشین رو به تصویر میکشه کسانی هم هستند که معتقدند این تصویری از کاری هست که عیسی مسیح برای ما انجام داد وقتی عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهان ما میمرد چیزی که در مورد هر کدام از ما به پدر گفت این بود پدر هر چیزی که اونها به تو بده کارن به حساب من بذار. من دارم اینو می پردازم. اگه شما دوم قرنتیان باب بیست آیه 21 رو درک کنید چیزی که اون آیه میگه در واقع اینه مسیح کاملا بی گناه بود ولی خدا به خاطر ما او را بی گناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم این همون چیزی بود که منظور اشعیا هم بود وقتی که گفت همه ما مثل گوسفندان گم شده بودیم و هر یک از ما به راه خود میرفت خداوند گناه ما را به حساب او آورد و او به جای ما متحمل آن مجازات شد آیاتی مانند این به ما میگن که وقتی عیسی مسیح بر روی صلیب میمرد در رابطه با گناه من و شما و گناه تمامی افراد روی زمین گفت پدر هر آنچه که آنها به تو بده من همین الان می‌پردازم. آنها اونها رو به حساب من بذار الهی دانان به این کفاره جانشین می میتونید ببینید که نامی پولس به فیلیمون پر از کاربردها ها هست بعضی ها بر این باورند که نامی فیلیمون تقدیس شدن رو به تصویر می‌کشه، چون پولس در مورد اونیسیموس به فیلیمون میگه قبل از اینکه او فرار کنه و در زندان روم مسیح رو پیدا کنه او نمیتونست به شایستگی نامش رفتار کنه تو به او مفید و قابل استفاده لقب دادی اما او نتونست مفید و قابل استفاده باشه او نتونست به شایستگی نامی که به او دادی زندگی کنه اما حالا که مدتی او را از دست دادی و او مسیح رو پیدا کرده او با اتیئی به طرف تو برمیگرده با مسیحی که در قلبش داره و به او این توانایی رو میده که به شایستگی نامش رفتار کنه وقتی ما کتاب مقدس رو بررسی می کردیم، گفتم که این رفتار روانشناسی خوبی هست که با بچه هامون طوری رفتار کنیم که عیسی با پتروس رفتار می کرد. به شمعون پتروس می من تو را سخره خواهم نامید. اگرچه پتروس سخره نبود و استقامت نداشت، یادتونه که عیسی به مدت سه سال پتروس رو صخره خطاب می کرد. بهتون گفتم که باید سعی کنید گاهی این رو روی فرزندانتون اعمال کنید. این روش روانشناسی خوب و مثبتی هست که به فرزندانتون دیدگاه مثبتی میده. میتونید به فرزندانتون اینطور بگید: من به تو ایمان دارم. من واقعا میدونم که تو بهترین هستی. ایمان دارم که خدا کارهای بزرگی توسط تو خواهد کرد. باب محبت پولس به ما میگه که محبت این کار رو میکنه. محبت به همه چی باور میکنه. محبت به همه چی امیدواره. محبت بهترین ها رو میخواد. محبت به بهترین ها باور داره شما باید وقتی فرزندانتون رو تربیت می‌کنید این مسئله رو مد نظر داشته باشید من و همسرم پنج بچه بزرگ کردیم و در طی این مدت چیزهای زیادی یاد گرفتیم شما نباید توقع داشته باشید تا قبل از اینکه فرزندانتون از نوع متولد بشن ثمرات روح رو داشته باشن مادامی که اونها روح رو دریافت نکردن نباید توقع داشته باشید که اونها در روح ثمر بیارن مادامی که فرزندان شما مسیح را نپذیرفتند نمیتونید توقع داشته باشید فرزندانتون مانند پیروان مسیح رفتار کنند گاهی فکر کنم والدین ناامید میشن و بچه ها سردرگم چون که والدین رفتاری رو از اونها انتظار دارند که بچه ها از احتش بر نمیاد اینجا دوباره در زندگی اونیسیموس چیز زیبایی به تصویر کشیده شده پولس برای فیلیمون مینویسه، شاید تو به مدت کوتاهی او رو به عنوان یک برده از دست دادی. کسی که نامش مفید بود نتونست به شایستگی نامش رفتار کنه تو او رو مدتی در اون بود از دست دادی تا اینکه بتونی او رو پس بگیری اما نه به عنوان برده بلکه به عنوان برادر و شاگرد عیسی مسیح به عنوان کسی که حالا مسیح در قلبش است ای در قلبش داره که این امکان رو برای او فراهم میکنه تا به شایستگی نامش رفتار کنه کتاب مقدس به این تقدیس میگه تقدیس به این معنی هست که شما چطور به عنوان یک ایماندار تولد دوباره با فیض خدا زندگی خواهید کرد؟ در خاتم هنوز چیز دیگه در کتاب فیلیمون هست که من واقعا اونو دوست دارم و اون جایی که پولس به فیلیمون می نویسه و اگر به تو بدی کرده است یا چیزی به تو بدهکار هست آن را به حساب من بگذار چیزی که پولس بعدا میگه اینه من این را با دست خودم می نویسم من پولس آن را به تو پس خواهم داد. نمی گویم که تو حتی جان خود را هم به من مدیونی من استفاده از این کلمه خود را خیلی دوست دارم کلمه خود کلمه خیلی جالبیه تعریف لغتنامه از کلمه خود فردیت و منحصر به فرد بودن هر شخصی هست که او را از دیگران متمایز میکنه این معنی کلمه خود هست این تعریف خود به معنی این هست که وقتی خدا تصمیم گرفت شما را به وجود بیاره او تصمیم گرفت که شما از تمامی انسان های دیگر متفاوت باشید. براساس اساس چیزی که پولوس به فیلیمون نوشته، ما قبل از اینکه از نو متولد بشیم، واقعا نمیتونیم خودمون باشیم. چون فیلیمون دوباره متولد شده بود، پولس به او گفت، تو حتی جان خود را هم به من مدیونی. تو نمیتوانستی خودت باشی. تو نمیتوانستی شخصی منحصر به فرد و متفاوت از دیگران باشی اگر از نو متولد نمیشدی. از آنجای که من باعث تولد تازه تو بودم تو خودت رو به من مدیونی این کلمه خود چیزی به ما تعلیم میده بسیاری از مردم سردرگم و ناامید و غمگین هستند چون که شخصی نیستند که خدا قصداش بشند. بشن در نتیجه ما چیزی رو داریم که به اون بحران هویت میگیم ما کسانی رو داریم که دائما تلاش میکنند بفهمند کی هستند چی هستند کجا هستند و کجا باید باشند شاید آخرین تصویری که میتونیم از نامه پولس به فیلیمون به اون اشاره کنیم اینه که شما هرگز خودتون نخواهید شد تا زمانی که به عیسی مسیح ایمان نیارید کسی و چیزی در جایی نخواهید بود که خدا میخواد باشید و همونطور که پولس ایمان آورد اونیسیموس و فیلیمون ایمان آوردن شما هم باید به عیسی مسیح ایمان بیارید اگر مدت‌هاست که در این کلاس‌ها با ما همراه هستید و یا اخیراً به ما پیوستید اما هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردید حالا وقتشه که این کار رو بکنید و به خدا بگید من به عیسی مسیح ایمان دارم او تنها کسی هست که میتونه منو با تو صلح بده و میخوام از تعالیم او پیروی کنم من میخوام کسی باشم که تو از من میخوای باشم اگر این دعا رو کردید به راهنمای خودتون اطلاع بدید چون چیزهای زیادی هست که وقتی پیرو عیسی مسیح شدید باید یاد بگیرید اگه امروز از کسی و یا چیزی و یا از جایی که هستید درمونده شدین راه حل نهایی تولدی تازه در ایسا مسیحه. همونطور که معلممون امروز گفت ما مال خودمون نخواهیم بود مگر کس دیگه ای بشیم، خلقت تازه که خدا میخواد بشیم. وقتی ایمان میاریم او میگه اینکه همه چیز تازه شده و چیزهای کهنه درگذشته. اگه تا حالا قدم ایمانی، برای اعتماد به ایسا به عنوان ناجی و خداوندتون برنداشتید امروز این کارو بکنید و کسی بشید که خدا میخواد تا برنامه دوباره خدا شما رو به فراوانی برکت بده.